سپاس گزارم که تا این لحظه با رادیو البورز همراه بودید در این زمان نوبت به اخبار دانمارک در هفته که گذشت میرسیم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره دانمارک مقام اول طلاق در اروپا را دارد دانمارک در خیلی از زمینه سخنی برای گفتن دارد و در جاگاه های نخست این بار اما گزاره شده که دانمارکیها ها اولین جایگاه را در زمینه شمار طلاق و جدایی از آن خود کردند. آخرین آمار طلاق در کشورهای اروپایی در سال 2014 از این قرار است که از هر هزار نفر حدود یک نفر در ایلند طلاق گرفتند و هرچه بیشتر به طرف شمال اروپا می رویم آمار طلاق در این کشورها بیشتر می شود به طور مثال دانمارک با حدود سه نفر در رس جدول قرار دارد پرداخت لیسانس تلویزیون در دانمارک به احتمال قوی کاهش می‌یابد. بر اساس قانونی که در چند سال گذشته در دانمارک وضع شده است، هر وسیله الکترونیکی که قادر به دریافت برنامه‌های شبکه تلویزیونی در دانمارک باشد، مشمول پرداخت هزینه لیسانس تلویزیون خواهد بود. البته تماشای برنامه‌ها از طریق تلفن‌های هوشمند به دلیل گستردگی طیف استفاده از آنها کماکان مشمول پرداخت این هزینه نخواهد بود. از جزیات نفعه اجرای این تر هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است در یک نظر سنجی که توسط موسسه گالوب در مورد لیسانس تلویزیون گرفته شد 45 درصد جوانان بین 18 تا 35 سال از پرداخت لیسانس تلویزیون اجتناب میکنند پرداخت هزینه رادیو تلویزیون توسط مصرف کننده ها در دو سال آینده تغییر خواهد کرد دولت پس از بحث طولانی در کابینه این مطلب را اعلام کرد بیشتر پیشنهادی مبنی بر جایگزینی هزینه رادیو تلویزیون با یک مالیات مستقیم از مردم مطرح شده بود که اکنون مشخص شده است سیستم پرداختی کنونی تا دو سال آینده تغییر میکند وزرای کشور و احساب اعلام کردند که امیدوار هستند که لایحه‌ای تازه را تدوین کنند که به موجب آن افراد خارجی که مرتکب جرایم میشوند از کشور اخراج شوند قوانین فعلی دانمارک به مقامات اجازه نمی دهد یک خارجی مجرم را اخراج کنند به گذاشت رسانه ها تعداد 170 مجرم خارجی در دانمارک برای چندمین بار حکم اخراج خود را دریافت کردند اما مقامات نمی توانند با توسل به زور مهاجران مجرم را اخراج کنند کمبود نیروی کار در رشته های تخصصی اقتصاد دانمارک را با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است دولت دانمارک قصد ندارد برای مقابله با این دشواری‌ها از جمله در شرایط مهاجرت خارجی ها به این کشور تحصیلات چشمگیری ایجاد کند به نقل از بانک مرکزی دانمارک کمبود نیروی کار از جمله معضلاتی است که روند رشد فعالیت های اقتصادی در دانمارک را با تهدید روبرو کرده است شرکت ها و یا کارخانه‌ها در این کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستند. گفته می‌شود اقتصاد دارماگ گروپ پیشرفت است اما کمبود نیروی کار نمی‌تواند اقتصاد را پایبند نگه دارد. نماینده پارلمان دارماگ از شلیک به سمت قایق‌های پناجوآن حمایت کرد. یکی از اعضای پارلمان دارماگ خاصار تیراندازی به قایق‌های حامل پناجوانی شد که به صورت غیرقانونی دانمارک شدن با این حال سررننس سخنگوی حز گفته که شلی کردن به پرراتژران ختمش حزب مردم دانمارک نیست قسمسل نخست وزیر دانمارک معتقد است توافق محدود یوروپل که اتحادیه اروپا به دانمارک پیشنهاد داده قابل اجرا اما آسان، نخواهد بود بود. دانمارکیا در همه پرسی دسامبر سال گذشته رأی به ادامه معافیت از سیستم قضایی اتحادیه اروپا دادند که در نتیجه دانمارک نمیتواند در یوروپل مشارکت داشته باشد. بر اساس توافقی که حاضر شده پلیس دانمارک میتواند تنها از طریق یک رابط با بانک اطلاعاتی یوروپل دسترسی داشته باشد. براساس اساس نامه میان شرکت نورتی که دانمارک و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی عملیات اجرایی احداث مدرن ترین تولید انصرین خاورمیانه میانه ما آینده در ایران آغاز می شود این شرکت در حاشه همایش معرفی قلم انصرینی لومیر در تهران با بیان این مطلب حسار رو کرد با بهره‌برداری از این واحد مدرن صنعتی به جای واردات داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی ایران به جمع کشورهای صادرکننده داروهای جدید مورد نیاز این بیماران در سطح منطقه تحقیق خواهد شد. حزب سوسیالیستی فهرست اتحاد دانمارک یک مدل برای سی ساعت کار در هفته را ارائه داده است. رئیس این حزب هزاران نفر بیکار در جامعه هستند، توانند کار بده کنند، اما از طرف دیگر یک بازار کار داریم. که در آن تعداد روز، از کارکنان از مریضی استرس و یا خستگی رنج می‌برند این حس پیشنهاد داده در طول یک مدت زمان 21 سال ساعت کار هفتگی به 30 ساعت کاهش یابد نخست وزیر دانمارک به دیدار فرزندش در عراق رفت نخست وزیر دانمارک هفته گذشته به منظور دیدار با فرزندش و مقامات این کشور به عراق سفر کرد لاسلو کیلارگاسموسن در آخرین روزهای سال 2016 به عراق رفت تا با پسر سربازش و همچنین مقامات این کشور از جمله نخست وزیر عراق دیدار کند. کاسموسن پس از سفر کوتاه خود به عراق به دانمایک بازگشت. نخست وزیر دانمارک در کنفرانس خبری مشترک با ال ابادی، وزیر عراق گفت عراق در حال جنگ با داعش برای نابودی کامل این گروه تروریستی است و پایان داعش در موسیل خواهد بود. علبادی نخوص وزیر عراق گفت دانمارک کمک ارزشمندی به عراق در زمینه های نظامی و بشردوستانه تقدیم کرده است و ما از کشور دانمارک تشکر میکنیم و خواستار ادامه ارائه این کمک و آموزش نظامی نیروهای عراقی هستیم نخوص وزیر دانمارک در سفر آخر هفته خود به عراق قول کمک بیش از پنجاه میلیون کرونی به این کشور داد قرار از این پول در اختیار پنج سازمان دانمارکی که در اطراف شهر موسیل فعالیت می قرار گیرد بازگشت F-16 های دانمارک تعداد هفت فروند جت جنگی F-16 دانمارک برای شرکت در عملیات ضد تایج در علاقه سوریه به منطقه زن شده بودند، این هفته به دانمارک بازگشتند. گفته می شود این حب تا سال 2018 عملیاتی نخواهند پزشکان دانمارکی اصرار دارند که ختنه پسران نابالغ در این کشور ممنوع شود. انجمن پزشکان دانمارک در بیانیه‌ای ختنه پسران نابالغ را مغایر با معیارهای اخلاقی خواند و خواستار شد شدن که این عمل جراحی برای پسران در سن 18 سالگی ممنوع شود. در این بیانیه آمده است والدین در حالی که تصمیم به ختنه پسران خود میگیرند، آنها را از حق تصمیمی در مورد هویت فرهنگی و مذهبیشان محروم میسازند به اقیده پزشکان نوجوانان بعد از 18 سالگی باید خودشان در این مورد تصمیم بگیرند پزشکان میگویند عملهای ختنه در سن 18 سالگی باید تنها به دلیل دلایل پزشکی انجام شود نظرسنجیهای انجام شده در دانمارک نشان میدهد بیش از هشتاد و درصد مردم این کشور مخالف ختنه پسران نابالغ هستند و از درخواست پزشکان برای ممنوعیت این عمل حمایت میکند و آخرین خبر دادگاهی در دانمارک جوانا پالانی جنگجوی کورد زبان و کورد را به زندان محکوم کرد دادگاه عالی دانمارک سرانجام پس از مدتها بحث و سر صدا بر سر ماجرای یک دختر دانمارکی کرد تبار که به همراه جنگجویان کورد موسوم به پیشمرگهای نیروهای داعش در عراق جنگیده بود و ای را به زندان محکوم کرد پالایی دختر 23 ساله است که به همراه نیروهای پیشمگه کردستان عراق علیه اسلامگرایان افراطی جنگیده بود. بر اساس حکم دادگاه باید متحمل زندان شود سودور حکم زندان برای خانم پالایی به دلیل عدم رعایت تعهدی یه وی به مقامات قضایی و پلیس دانمای گنبا شده. خانم پالایی در 6 جوان 2016 و در حالی که ممنوع خروج از دانمارک بود از فرودگاه کپنهاگ به قطر مسافرت کرد و قانون را نقص کرده پیش از این دادگاهی در کپنهاگ در روز 4 فوریه گذشته به زجر و توقیب پاسپورت جوانا فرم دستور داده. بر اساس رأی دادگاه خانم پالایی حق خروج از دانمارک را ندارد. وکیل خانم پالایی در به های دانمارکی گفته که برای گرفتن حق موکل خود به دادگاه عالی این کشور مراجعه خواهد کرد. جوانا پالایی پس از ماهها حضور در میدان جنگ علیه نیروهای داعش به همراه رزمندگان کرد در سپتامبر 2015 به دالمر برگشت و در بعد به ورود پلیس امنیت و اطلاعات دانما گذرنامه او را توقیف و اجازه خروج و از کشور را لغو کرده است. به این اقدام پلیس و اجزای امنیتی دانمارک را غیرقانونی می‌داند و اظهار داشت آنها اجازه ندارند من را در دانمارک محبوس کنند. من یک سرباز هستم و هیچ کدام از قوانین کشورم را نقض نکردم. آتش دانمارک من را برای مبارزه با تروریسم تعلیم داده است و حالا اجازه نمی‌دهد در جنگ علیه داعش حضور داشته باشم. با این همه پلیس دانمارک می‌گوید که خانم پالایی در جنگ با داعش با نیروای پکاکا همراه بوده و این گروه از نظر اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی است تندرستی تون پایدار عزیز